dann kann man حرف هم دور سات میشی از مقصز های الان دوست داری به شندی کلماتتیکی بعدده قطلب وج میرسه به دادگاه فدید تحت تقریب دست بزن چ میش کناس و شاعتتن دور کردنشه درست وصله به فوااصل خاطرات قدمی آب تا مریض تئات میزنی میگووب به میله چش باست ببینه باز تو ان دست به اشک پشت میشه مشت نفسندهه ااه نه این مقیاس میره بیا همیشه سطح بالا میگیره زندگیشو یاد گرفته زیر کفش خود میشه اونی که همیشه سر به زیر مرز بین شو آنو عمل به چهر خوش چکلو دیده باز میشه نتیجه یه فکر خود ساخته تشبیش وقت حاصل دست و سب دنیاش بود که عمل میکنه نیست سوی عملی هدف بیش ساخت از تحت جل بشی با هدرانه میدم به تد که مشکلی باشه شده سر خود دواستش از فانی می Alles ist schon میشه new show دستش ihr seid das nicht wortwörtlich oder du du t mal nicht nur به pock nachen wie so man der loschen wort der wie so hat er schon تاریخ man der wie so der klatsch kann ich das doch nicht bad und dem dach ran zu fahr mal und fahr den loschen hat sich doch wie gende لحظه لحظه واضح واضح‌تر تا جدی نافست دستش اون کاما تاخته چی در جه حد هدایتی جامعه ک جهان بینی افتاری مسجد مسلسل روزانه جه اخروی مطمئن cardíat دو پایانی وحشی افروت سایه کو اندروز انسان آرامش غالی کوفام پرچگی تار زو یاد رویا میگن تو حال تو خداو خدا میگم عجب کی خش دستی تفکر پاییش نایاب چی هست وقتی صدا ز کرسه حلم تخیه زره که فقط بس دند جی دنیا در تلفات که بدم دشیول هد بیشی از آگو برده موتی آوریس بله مالگو ترین آب ودی خدمه چالو آزاد شیو برده مدتی به اول خدمت حق به زیلی دیدش ابله پریشش متعی میشه از سویش که گریفش بود بوده ویریم و دوت ماندش رفته زمزمه ی پدر کیو بنویستم من دگرشه این گوشت بنویستم خودبهش این گوش بنویستم تکیو شتاری بنویستم ساترن ازت بردو ام دیگر انجو فرق مالگو بعد جنگ سون ولادو زخم بیو جان دنشه نامی دستی دارم تو مسی